زرے نظری محفی سہیلی بر در کوفتم بار دیگر آشنا با چشم من با مدر آن میخانه بود.باننگ پای آمد و گفتم که باننگ پای اوست این نشان آشنای نکشنا پیدای اوست. چو چشم دختری کس خواب برخیزد به ناز باز شد آهست و از آن میان دختری در من به چشم آشنایان خیره شد خاندم ما در نگاهش قصه بیگانگی گفتمش آن آشنای من کجاست اندکی در چهره من خیره ما آشنای دور را گویی که میارد بیاد گفت همزبان خیشتن را میشناسم بر لبش نام تو هردم میگذاشت جز یادت از لبش هرگز سرودی برنخواست گفتمش اکنون کجاست گفت از اینجا رخت سوی خانه دیگر کشید در هجاب سالما از پیش چشمم پر کشید بار دیگر هایم بوس بر خاک راه اغج زمان هم من رحمی سپوررد سالها از پیش چشم میگذشت خانهی دیگر نگاه را به سوی خود کشید آشناوا و چشم من با مددر ان خانه بود حلقه بردر کوفتم بار بگر. بانگ پای آمد و گفتم که بانگ پای اونوست در چو چشم دختری با ناز از هم باز شد دختری پیدا شد و گفتار ما آغاز شد گفتمش آن آشنای من کجاست اندکی در چهره من خیره ماند آشنای دو او را گویی که میارد بیاد گفت او را میشناسم بر لبش نام تو هر دم میگذشت جز بیادت از لبش هرگه سرودی برنخواست گفتمش اکنون کجاست گفت از اینجا رخت سوی خانه ای دیگر کشید در حجاب سالم ما از پیش چشمم پر بار دیگر یار گام هایم نقش نو بر زد اغربک های زمان همگام من رحمی سپرد سالها در پیش چشمم خفته بود خانه ها از پیش چشمم میگذشت آشنا با چشم من با مدر هر خانه حلقه ها بردر زدم بانگ پایی در سرای آخرین آمد به گوش در چو چشم دختری آهسته از هم باز شد باز آن گفتارها آغاز شد باز آن گفتارها پایان گرفت گفتمش آن آشنای من کجاست پاسخ تلخی لبانش راز یک دیگر گشود گفت او دیریست در این خانه تنها مرد مرد فرسش بیهودهی بر روی لبهایم نشست گفتم ای ناشنا با من نگاهت آشناست پس تو دیگر چیستی گفت من بیگانه ای ناشنا باخیشتن من دوستان پرعرج بزم شاعران سلام مشتاقانه و سمیمانه مرا بپذیرید برنامه امروز برای نخستین بار با قطع شعری آغاز شد و در بزم دلنگیز امروز سخنوران گرانمایه و هنرمندان ارزشمند شرکت دارد مهمان گرامی این هفته بزم شاعران جناب آقای دکتر محمد حسن گنجی استاد محترم دانشگاه هستند که علاوه بر سمت استادی دانشگاه معاونت وزارت راه و ریاست اداره هواشناسی را نیز به عهده دارند شاعران ارجمند ما عبارتند از آقای دکتر علی رضا میسمی متخلص به پروانه که در عین شاعری جراح هم هستند همچنین آقایان محمد نوعی و شهدی لنگرودی هم در این بعضم شرکت دارند و در موقع خود از هر یک استفاده خواهیم کرد نوازندگان عزیز این هفته هنرمندان گرامی آقایان انوشیروان روحانی و فرهنگ شریف هستند و خواننده خوش صدای این بعضم آقای ایرج خواهند بود که به این برنامه شوهال خواهند بخشید بیان کنندگان اشعار این هفته خانم ها سیما فیروزه امیر معیز و آقای رضاییان هستند و چه بهتر که بیش از این دوستداران بعض را منتظر نگذاریم و بپردازیم به متن برنامه خب جناب آی دکتر گنجی سرکار مایل هستید که برنامه رو با سخنی از سرکار فتاح کنیم با کمال میل؟ پس خودتو که رو بفرمایید قبل از اینکه شروع کنم باید یه اعترافی بکنم مقی سویلی خواهش میکنم بردر من این عنوان بد می برای من خیلی وحشت آور بود چون من در عمرم شعر نگفتم بله حتی در نوشته هم در عمرم یک جایی معنا رو فضای تکلفات لفتی نکردم نه اهل هنرم و نه اهل موسیقی و تو راه که می آمادن فکر میکردم که به چه مناسبت از من دعوت شده بعد تعمل زیاد دیدم که یه وجه اشتراک خیلی ضعیف بین من و شعرها هست همه میدونید که من توی من به ناسعی به دروگویی معروف شدم که قلبان؟ به دروگویی معروف شدم برای این که رئیس هوا شناسی هستم برای این که رئیس هوا شناسی هستم که دوستان شاعر منم که وقتی که با سنایای بدیعی مبالغه و اغراق سر و کار دارن، میگم که اغلب صحیح نیست، دروغ‌گویی شوهرها باشم و با اشتراک درست می‌کنم، باج اشتراک که بین من و شو شورا همین دروغویی من باشه. منته با این تفاوت که مال من دروغوییه، یعنی نسبت به دروغویی ناروای سلام خدمتون عرض خواهم کرد، ولی دوستان من اغلب نمی‌خوان همین چیزایی رو بگن. به برحال... یه دفاعی بذارید که بنده بکنم. دروغگوی شعرا ملاحت به کارشون میده که به قول نظامی میگه در شعر من پیچو در فن او چون اکثر به اوس او ولی دروغگوی شما خدای نخواست موجوش مردو سرما می شما شوفر فردا آفتابه اینو بی پارتو بیرون میره یک مرتبه سو سرما میگه دروغگوی ما دروغگوی با میشه گفت علمی است که داش میلاحه نمیشن باشه باید. حالا جناب عالی میدونید تمام شلمانندگان راویا قطعا میدونن که 10 سالی که من رئیس شورای کشور هستم دری دره هواشناسی ما وظایف خیلی خیلی حساس و مهمی از جهات مختلف انجام میدیم یکی از تکالیف فرعی که جنبه به اصطلاح تبلیغاتی برای هواشناسی داره همین وظیفه پیشبینی هواست صحیح در این مورد بعضی‌ها خیال می که ما کیروخط می‌ندازیم <تصفح> بعضی‌ها خیال می که پیش می‌ندازیم بعضی‌ها خیال می که ما یه مقدار پیشبینی رو فال فالورق میگیریم مثلا فالورق میگیریم ولی من میخوام ارز بکنم که در اداره هواشنرسی این کار پیشبینی که ما انجام میدیم مبتنی بر یک اصول علمی خیلی پیچیده ایست کاملا سهیه و به طور خلاصه اگر بخوام وقتون زیاد نگفته باشم باید بگم که مداوم اخبار هوا از تمام نقاط دنیا به دستگاه هواشنرسی میرسه و این اخبار رو که قبل از اینکه برسه به دستگاه در اصره اوقات معمولا به فاصله یه ساعت نیمی ساعت به دست استفاده کننده اداری یا هواشناش میرسه چندین دست رد و دل میشه از چندین دستگاه تیگراف یا پیسکیم رد و دل میشه بعد میاد میبرم روی نقشه و با متعالیه اون نقشه که وضعه هوا رو در یک ساعت معینی مشخص میکنه یه استنباطی هواشناش میکنه حالا اگر خدای نکرده این خبری که به اشتادن صحیح نباشه قطعا ن از نقشی خودش میگیره به همون میزان ناسعی از کادر خادم و یک علت عمده نقص کار هوا شناسی که البته منصر بگیران هم نیست در تمام دنیا همینجور هست همینه که اطلاعاتی که به دست هوا شناس میرسه صد در صد یا صحیح نیست یا دیدبانی صحیح نشده یا مربوط به زمان دیدبانی نیست و اغلب به ناراتی هایی میشه که همه ما کمان بیشتیم با خبر هستیم متستفانه در اینجا من به عنوان رئیس هواشناسی سفر بلای تمام هواشناس های جوهان شدم برای اینکه هر کسی هر جای اشتباه میکنه سردنش رو من دریافت میکنم و البته سوجی خیلی خوبی شدهن برای, برای در تمام دنیا همینطوره در همداری همحت من همینجوره هم حرفه های من همی هم همینشک در همه جای دنیا دارم در جاب ما سوجیی خیلی خوبی به دست شرا دادیم به دست کاریکات رسیاع دادیم برادرری من دارمم که نقاش است و خیلی بازخت و خیال میکنم که بهترین تابلو رو از من اون تهیه کرده و اون ام. تابلو من نشون میده که صبح بسخونه میام بیرون در حالی که رادیو با صدای بلند میگه که امروز هوا خوب خواهد بود ولی ما حاضر من هم چطرام برداشتم هم کلامو <تصفح> رفاهای شاهره من هم که ابراج ذوق میکنند درباره باره های دستگاه که من سزنش رو بایستی که قبول بکنم خیلی حرفا میزنند از جمله دوست بسیار محترم و قدیمی من آقای ابراہیم صحبا که شاید یه دست شنواندگان که با من یار مدرسه است و تمام عمر رو با هم گذراندیم در دفتر صحبا چندین قطع رجب حواشناسی داره ولی اون چی که الان منذرم آمد که برای جنابالی و شنواندگان لازم میدانم بگم و مناسب خواهد بود چون بعد مشاعران است منم بالاخره بایستی یه شعری اگرم خودم نگم از یه شاعر بیرجندی و یه دوست نزدیکم بگم یکی دو سال پیش آقای صحبا از من دعوت کرد که در یکی روزای پنجشنبه در باشگاه لایونز مهمانش بشم صحیح یه دوستی دیگه هم اون روز مهمان صحبا بود و اون آقای خسرو و شاهانی بود در این باشگاه لایونز رست بر این هست که اعضا باعثی مهماناشون رو معرفی بکنن و آقای صحبا که بلند شد با سه بیت من رو معرفی کرد که الان من ترمی کنم اون سه بیت رو از حافظه بخونم. خیلی مزرد میخوام اگر نمیشنم اونجوری که باید حتی یه بیت رو بخونم صحبا گفته بود که هواشناس عجیبی به شهر ما باشد که کسب به گفته او تکیه بر هوا نکند <تصفيق> هران چه گوید و خواهد درست برعکس هست مزرد ما دوباره میشه هران چه گوید و خواهد درست برعکس هست که پیشگوهی وارونش خطا نکند کنون که هست بر این سفره میهمان شما کنون که هست بر این سفره میهمان شما خدا کند که به جان شما دعا نکند یعنی سه دارست البته اجنباری که شاعر وقتی که دروغ میگه بهش میگید که ملیهی در کارش هست صحبای اینجا گفته که ا چه خواهد گویید درست برعکس است به صورت یه حکم مطلق اگر این حرف درست باشه دیگه بنده بارش می‌میرم برای اینکه نمی‌خوام یه حرف را راستی بذارم من چیزی بخوام متحشون صحبا گفته شما براش دست می‌میجید و تقدیرش می‌کنید به به خوب گفته ولی من که میگم که احتمال این هست که در ارتفاعات بارندگی بشه بدون اینکه کسی رفته باشه به ارتفاعات و بدون اینکه ببینم که آها اینطوری گفتم و گفتم من ایشاره رو بدنام کردن. می گمونند از این کافی بسیار لذت بردم. به هر حال وجود سرکار برای ما مقتنعه و فضیلت تو بر همه مشهود و مفتخریم به اینکه شرکت فرمودید در این بعض و بیانیاتی فرمودید و نمک نمکه به ما بودید. خب عید دکتر میثمی. خواهش می کنم. خب سرکار که بابت جراحی مطلبی نداری. خواهش می دکتر جراح اسدید. خواهش می کنم. باصیر اگه مطلبی دارید راجع به جراحی، مطلب جراحی که دل جراحی که دل ما رو ریش بکنه؟ متشکرم. اعضا بفرمایید همون صحبت شعر و شورا حال باشه. خواهش الله میل دارید چگونه شعری براتون بخونم؟ هر گونه‌ای که خود حضرت علی مایل باشید. یعنی غزل میپسندید؟ ما همه جو شعر خوب هر جوری باشه. میپسندید؟ خب پس من با اذنتون یک قذر براتم تمام نمیکنم. گر ناله چونه ماز دل تنگ برارین بس ناله که از سینه هر سنگ برارین حیقم مددی کن مرا از این دل و بگذار با اشک از آینه دل زنگ برارین شاید. شاید. ما زنده به عشقیم و نخواهیم به جز عشق بی عشق کجا ما سر از این ننگ براریم از رنگ ریا و چهره جان پاک نمودیم شاید که دمی دور ز نیرنگ براریم بر. در خلوت اندیشه ز چنگ دل پردرد صد نقمه جانسوزه خوشاهنگ براریم بسیار بسیار خوریم بینیم به حسرت چلب بوس طلب را فریاد تمنای دل تنگ براریم حیف است که از خون دل شعر من ای دوست یک رنگ نگردیم و دو ست رنگ براریم خب آیه دکتر ما روشی داریم که گویندگان شعر یعنی بیان کنندگان شعر که در این برزم هستند دومین قطعه شعر رو میخونند و حالا سرکار ماهیرید که دومین قطعه خانمان باید خانم بخونن خانم سیما بخونن آقای رضایان بخونن والا از اونجایی که دوست عزیز ما آقای رضایان اینجا تشفید دارند بر رابطه دوستی ما هم بیشتر رو خواهیش بوده اگه اجازه بفرمایید ازشون خواهش میکنم که با توانایی کلامشون خواهیش خیلی ما شکریم شیر ما پس آقای سولی آقای فرهنگ یاری کنم مرا به وسیله من میخواید آقای فرهنگ شمایید دا. میدونید دانی سرکار <تصفح> <تصفح> <تصفح> بله البته شما سلام میدونید <تصفح> البته سوجیے شیو میشو غیر هستی و جان منی هنوز دمساز غیر هستی و جان منی هنوز خون منی که جرم چنین در تنی هنوز تاریک شد فروغ دلفروز زوغ من ای دیده امید چرا روشنی هنوز خون می چکد به دامنم از چشم آرزو خون می چکد به دامنم از چشم آرزو تا بینمت نشسته بران دامنی هنوز گفتم خموش می شد یه دل ولی چه سود دینم به غم نشسته و پار شیبنی هنوز رساوی مردمم که چنین دوست دارمت رساوی مردمم که چنین دوست دارمت وین گسام کشد که به من دشمنی هنوز برخی برخیز بخت خفته که شد ای عیدیق خوابیده در سیاهی اهریمنی هنوز ایسا یه خیال شرخیز او برو ایسا یه خیال, ای خیال شرخیز او برو او رفت و این عجب تو خود با منی هنوز شب بسید متحوش یک نگاه و مشتاق صد گناه متحوش یک نگاه و مشتاق صد گناه ای زوی گم شده جان منی هنوز شمعی که جان خسته پروانه سوختید ماهی که با سیاهی دل روشنی هنوز آفرین غزل لطیف بود و آقای رضایانم خوب خواند سپاسگزارم خب البته شمعی که جان خسته پروانه سوختی همونطور که عرض کردم تخلص آیه دکتر میسمی پروانه بود به همون مناسبت با این سابقه ذهنی می‌بینیم که بیت خیلی لطیف‌تر بله ظریفه خیلی متشکرم خب بعد از آقای دکتر میسمی می‌بینم که آقای شهدی و آقای نوعی هر دو آمادگی دارن که شعر بخونن حال نمی‌دونم هر کدوم کدومایلن آقایم شروع بفهمن من پیشنهاد می‌کنم آقای نوعی دوست عزیز با کمال میل بنده به اتفاق آرا پیشنهاد شما تصدیق میشه همینش رو امتصال می‌کنم من دو تا شعر همرا خودم آوردم یکیش قذر ایست به نام باران خواب و دیگری چار پاره ایست به نام آفتاب سیاه قذر را را بدهید که خودم بخونم و شعر آفتاب سیاه را از خانم سیما خواهش کنم که با صدای کرمشون بخونم خواهش ببینم با شکر زشم مست تو امشب شراب میریزد از آن دو جا و مسیح دورد ناب می ریزد مرا به مییکده خوشییاور کی توانیدید تو از نگاه تو باران خواب می ریزد زگیزوا اون طلا ای سه تاره صبح به دامن شب من آفتاب می ریزدطنت؟ چو پونه صحرا عبیر آمیز است لبت به چاه زنختان گلاب می‌ریزد خدایا تو در خیال من و شعر من همان ماهی که نقره از برادوشش براق می‌ریزد و درد که من شورزارم و دائم سرش دیده من در سراغ خب خانم سیما دیگه تأخیه جایز نیست بخواهیش میکنم افتاد سیاه آقای نویل هم سرکار بفرمایید که آقای روحانی هم است که اینجا نشستم بیکار آقای آقای روحانی هیچ چیدم نبود لحیفه. امروز محبت کردن آقای روحانی تشبه اردن حیف هست که خانم سیما بدون پیانوی شما این چه تمنده شما محبتی فرمید خیلی متعکریم زمنان قبلا از آقای نوییم خیلی تشکر میکنم با اون لطفه مخصوصشون با اجازت آقای سایدیم بس احفامه شروع کن آقای روانی خواهیش میکنم حالی پیدا بکنید که با حال بیشتر شد میکنم به هم ریزد که نروید ستار بر بامش ندرخشد به شام ماهی نفتد آفتاب در دامش می قدرت خداوندی از نگاه تو ماه می سازم با پر جوهت های سرگردان آفتاب سیاه می سازم زد, که نگرید به دامنش عبری نشکوفت شقایق خونین سر سنگ شکسته قبری من چو عبر نگاه نمناکت هر شب و روز جاله میبارم سر سنگ شکسته هر قبر گل خونین لاله میکارم اگر این آسمان به هم ریزد که شبه تار من سهر گردد هم گل ناز بشکفت در باغ هم پرستو بلانه برگردد می شدم باغبان از چشمت گل ناز سپید می سازم با نخه انتظار دیر انجام رشته های امید می سازم ما چکرم هم از خانم سیما متشکر کریم شکر. هم از شاعرش متشکر, متشکر هم از آقای روحانی که بسیار پیانوی با حال و با شوری زدن در آقای بزرش بسیار بسیار خوب خب آیرج رج ها. اشعار نقض و دلنگیز رو شنیدید دیگه حالا نوبات شماست که به برنامه ما تنبو بدید ولی یه مطلب است می بهتون ارز کنم که یادتون است در یه برنامه گفتم تازه. تکذی کارای تازه تو آوازهای ایرانی باشید در این برنامه. یادتونه؟ بله بنده. بندر... اینو از که بعد ردیفا رو آواز کنید اینکه در قدرت کسی نیست. برد. منظور من این است که یه گوشه هایی یه جایی که تالا کمتر شنیده شده با استادی خودتون هم آقای شریف هم شما در این برنامه همراهی بفرمایید. حاضر... امروز مثلا چیکار میتونم بکنم؟ بفهمت. شما امروز بدون چیز مزراب ساز بزنید. البته میشه این کارو کرد ولی در این دستگاهی به خصوص امروز یعنی در این کوک به خصوص یه ذره مشکل میشه ولی حاضر هم یه تیکه کوچیک باه کنم. پس بزره. شما اون بیت اولی که آیراد آواز میخونن جوابشونو با همون یک دست رو فقط با ناخن بدون مزراب بدید. بعد یعنی یعنی از با یک دست. بله اشکار. چه شمندگان به این هنره شما واقف بشن. خب آیراد شما چه کار تازه‌ای میخواید برای من بکنید؟ حالا بندهن میخام یه ملودی در اصفهان بخونم حالا نمیدونم جوری عذاب در میاد. حتماً خوب در مید. حالا آماده هستیم که ببینیم که آقای روحانی شما شرکت نمی‌فرمایید در این برنامه؟ آقای روحانی حتما شرکت می‌کنم. چه چکنید؟ خب پس آقای روحانی هم در جای خودشون ولی من بودی دلت نمی‌زنه. خاله چواد دو دست دو پا بزنید آقای روحانی. از بودر اوراکتون. آم پس آماده هستیم دیگه بالده. همه آقای شهدی و آقای نوئی که آماده هستن و همه آقایون آماده شنیدن و شنوندگان عزیز هم منتظر. Hi guys! به من با دیدنت آرام میگیرد اگر دو ریز آغوشم نگاه هم کام میگیرد مرا نگاهت را مگیر از من جان ما... که دل ساقی چشمان من اگر مست میخواهی نگاهت را مگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام می گیرد ab miyan e jam khamoshi wal جم خاموشی ولی چشمم زهر موج نگاه دلکشت پیغام میگیرم بر ایرج و فرهنگ شریف و انوشیروان روحانی که واقعا روحانی کردید بس ما رو با این ساز آواز خیلی متشکرم خب آی شهدی دیگه بعد از این همه لذت پردن از ساز آواز حیفه که شما ما رو مستفیز نفرمایید نیشه نبندگان رو در دراجه اول حالا میل دویتی شعر بخونی قزلی دویتی دو قطعه چیزی ارس کنم که من در این بحثم امروز اونچنان حال گرفتم که دلم میخواد اجازه الی میفرمایید دو تا غزل بخونم البته یکش یک من میخونم یکشم کمک تو میکنم بله کمکم کنند من کی بخونه قراره من بخونم خانوم امیر مویست اجازه الی میفرمایید یک غزلی رو همکنون بنده میخونم بنده. خواهش بکنم گفتم غمبی شما اردارم چه کنم در دل غمهش غیار دارم چه کنم؟ گفتا که چلال باش و خاموش بسوز گفتم دل داغدار دارم چه کنم؟ آفه آفه گفتا که دل از زلف درازش برگیر گفتم شب انتظار دارم چه کنم؟ خیلی خوبه آفره. خیلی خوب گفتا که بسوز با عشق بسوز گفتم دل بیقرار دارم چه کنم نه فهم که ز جام باده حمت متلم گفتم سر پر خمار دارم چه کنم سر خمار نظر از من جفا کار ببند گفتم برهت گذار دارم بابا. چه کنم علی گفت تا او که عمر بی امان دیده بپو گفت تا کیز عمر بی امان دیده بپوش گفتم به زمان کار داره به به چه خوبه ما گفتم, کیز عمر, دیده دیده بپوش. بپوش. گفتاو. گفتاو. گفتم کیز عمر بی امان دیده بپوش گفتم گفتم به زمان کار داره بحبه. چه کنم گنده اشتباه خوندم چون بیت خیلی قشنگه بازم میخونم باشه میکنم گفت تا کیز عمر بی امان دیده بپوش گفتم به زمان کار داره به چه کنم خیلی بیت خوبیه گفتاو که مکن شکوه چو شهدی از چرخ گفتم غم بیشمار داره چه کنم خیلی خشمار انشاءالله که غم بیشماراتون تمام میشه ولی قدرتون خیلی خشمگ بود قمالوده بود خیلی خشمار خیلی خانم امیر مایز آقای پس شما شروع بفرمایید خانم امیر مایز قطع دوام آقای شهدی رو بخونم در هر نگاهت مستی صد جام شراب است در هر نگاهت مستی جام شراب است چشمان تو میخانه دل‌های خراب است به به مه در هر نگهت مستی صد جام شراب است چشمون تو میخانه دل‌های خراب است زد شعله به جان چشم فریبا تو هر چند برق نگهت زود گذر همچو شهاب است زیبایی گل‌های جهان دیر نپایَد زیبایی گل‌های جهان دیر نپاید ای قنچه بزن خنده که هنگام شباب است با سایی. با سایی. از اوج فلک دیده بر این خاک چبستی دیدیم که پهنای جهان نقش سراب است فلک دیده بر این خاک چو بستیم دیده این که پهنای جهان نقش سراب است ای مرغ شباهنگ مکن ناله که امشب از عمر مرا آرزوی یک موش خواب است شبه شبه شب. خیلی متکرم آقای شهدی و همچنین از شما خانم امیر معیز و همچنین از شما آقای فرهنگ شریف دوستان بنده خودم امروز شعر نمیخونم چون چند تا نصیلوندگان عزیز نوشتند که اگر شما هر هفته شعر بخونید اده خیال میکنن که شما در برنامه قصد خود نشان دادن دارید از این نظر گهگاه شعر بخونید که این فکر برای کسی پیش نیاد البته این ن خیلی دوستانه و پر از محبت بوده. بنده هم اطاعت می‌کنم چون روز اول قرار رو بر این گذاشتیم که هر چه مورد علاقه شنوندگان ارجمند باشه بنده اطاعت کنم. فقط باید عرض کنم شعری که آقای ایرج اون 3 بیتی که در آواز خوندن در این برنامه از بنده بود این هم صحنه بود. بسیار خیلی خیلی خوب. خوب. شنوندگان سخن شناس صاحب دل برنامه ما به همین جا پایان می‌پذیرد. بنده به اتفاق دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر گنجی و شاعران گرانقدر آقایان دکتر علی رزا میسمی محمد نوعی شهدی لنگرودی خانم فیروزه امیر معز خانم سیما آقای رزایان و هنرمندان گرانقدر آقایان ایرج انوشیروان روحانی فرهنگ شریف شما را بدرود می و برای شما سرور و شادی و کام را روز خوش